او هزار و یک شب چون شب نهم برآمد گفت ای ملک جوان بخت دختر پاوری ای از آب برکه برداشته فسونی بر او بدنید و آب به برک برکه برکشاند در حال ماهیان به صورت آدمیان برآمدند و بازارها به صورت نخستین بازگشتند و کوه جزیده ها شدن پس از آن دختر به بیت طول احسان و کردار خیش به ملک باز نمود ملک آسته گفت نزدیک آی دختر نزدیک آمده گفت ای خاجه پایت بگذار تا ببوسم چون دست می دهد در آغوش درحال حال ملک تیغ بر سینه دختر زد دختر دو نیمه بیفتاد ملک برخواست از خانه بیرون شد جوان را دید که به انتظار ملکی ایستاده چون چشم بر ملک افتاد شوک به جا آورد و دست و پای او را بوط داد ملک نیز خلاصی او را تهنیت گفت و از او سؤال کرد که اکنون در شهر خیش به سر میبری یا با من همی آیی جوان پاسخ داد تا جان دارم از تو جدا نخواهم شد پس جوان گفت ای ملک از اینجا تا به شهر تو چقدر مسافت است؟ ملک گفت دو روز راه است. جوان گفت از اینجا تا به شهر تو یک سال راه است. ملک را تعجب زیادت شد. ملک ساده بسیج راه کرده با وزیر خود گفت که من قصد زیارت مکه معظمه دارم. پس ملک ساده در موکب ملک یک سال همی رفتن تا به شهر ملک برسیدند و سپاه و رعیت به استقبال ملک شتافته، سم سمند ملک بوسیدند و به سلامت او شادان شدند. ملک به قصر اندر آمده بر تخت بنشست و سیاد را بخواست. خلعتش داده شماری فرزندانش باز پرسید. سیاد گفت پسری با تو دختر دارم. ملک یکی از دختران او را برای خود و دیگری را از برای ملک زاده جادو گشته تزدیج کرد و امارت لشکر به پسر او سپور و حکومت شهر ملکزاد و جزایر سود را به سیاد تفویض کرد و به کامرانی به سر تا مرگ به دیشان دررسید و این حکایت عجبتر و خوشتر از حکایت حمال نیست و آن این بود که در بغداد مرد عذبی حمالی می کرد. روزی از روزها در بازار ایستاده بود که دختری خداوند حسن و جمال پدید شد دانسان که شاعر گفته موشک با زلف سیاهش نه سیاه است و نه خوش سر و قد بلندش نه بلند است و نراست او سمن سینه و نوشین لب و شیرین سخن است مشتری آرز و خورشید رخ و زهر لقاست و با هممال گفت سبت برداشته با من بیا هممال سمت بگرفت و با دخترک همی رفتن تا به دکانی رسیدند دختر در درآورده مقداری زیتون خرید و به حمال گفت این را در ثبت به با من بیا حمال زیتون در ثبت گذاشت و ثبت برداشته همین رفتند تا به دکانی دیگر رسیدند با آنجا سیب شامی و به امانی و انگور حلبی و شفتالو دمشقی و لیموی مصری و پرند سلطانی از هر یکی یک من بخرید و به حمال گفت این ها را برداشته با من بیا حمال آنها را نیز برداشته همی رفتند تا به دکان دیگر برسیدند دخترک قدری ریحان را برداشته و اقهوان و یاسمین و شقایق خریده با حمال گفت اینها را بردار و با من بیا حمال آنها را نیز در سبد نهاده با دخترک همی رفت تا به دکان قصابی برسیدند دخترک ده رَش گوشت خریده به حمال سپرد و همی رفتند تا به حلوایی رسیدند. دختر همه گونه حلوا بخرید و به حمال گفت اینها را در سبد بنه. حمال گفت اگر با من بودی خری با خود آوردمی که این همه بار گران بکشد. دختر تبسمی کرده روان شد. همی رفتند تا به بازار اتاران رسیدند. از عطریاد از هر یکی یک شیشه خرید. به هممال پس از آن به دخان شما برسیدن ده رفت شمع خاخوری خریده به هممال بداد هممال همه آنها را در سبد گذاشته دلاله از پیش و هممال به دنبال همی رفتن تا به خانه محکم اساس بلند کریاسی بسیدن دلاله در فکر دختری نکروی در ببوشید هممال دید که دربان دختر ماه منظر سیمین بریست. چنان که شاهر گفته پرداخته از شیر دو گلنار سمنبوی انگیخته از قیر دو نعبان سیاسا جهدش چو یکی هندوی عاشق که به حلقه زده از خفر و شکیبا شده زننار. هم از دیدن او سوس گشت و نزدیک شد که سبب از دوشش زمین افتد. با خود گفت امروز مبارک است فالم. کس به خانه اندر شد دید که خداوند خانه است از هر دون کوتر به فراز تختی بنشست و در خوب چنان است که شاعر گفته نگار قندلب کورا بود در زلف سیصد چین چه او یک بط نبیند کس به چین و قنده ها رندر. خمار چشم او تا هست سیر قمزی که جادو شکنج زلف او تا هست گرده لال او بر جانم بران هندو دو ظرف پرشکن خرسند برد هوشم بدان جا در دو چشم پرخمارندر دختر از تخت به زیر آمد و گفت چرا این بیچاره را زیر بار گران داشته اید پس دخترکان با هم یار گشته بار از دوش هممال به زیر آوردند و سبد را خاری کرد و هر چیزی را به جای خود گذاشت و دو دینار به هممال داده گفتند بیرون شو هممال به حسن جمال دختر کار نظر کرد و از اینکه مردی به خانندر نبود و هر گونه خوردنی و می و نقل آماده داشتند دل به بیرون نمی نهاد. دختران گفتند چرا نمی روی؟ اگر موز کم گرفتی یک دینار دیگر بستان. اما گفت نه وله ده برابر مزد خود گرفتم ولکن در کار شما به حیرت اندرم که شما به دینسان چرا نشستید و در میان شما از چه سبب مردی نیست تا با شما اونس گیرد و زنان را بی مرد اش بسینا تمام است. و گفتن که سخت را چهار پایه باید تا دیر پاید اکنون شما سه هستید و از چهار و تن ناچار است که مرد آزاده عاقل و سخندان و رازپوش باشد دختران گفتند که ما را بیم است از اینکه راز کشیدند به هر کسی فاش کنیم و ما از گفته شاعر سر نپیچیم که گفته است نخست موعظه پیر مجلسی این‌طرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید اما گفت به جان شما سوگند که من بسی امینم نیکی ها بگویم و بدی ها بپوشانم. منم که شهری شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات بخواست خواست و گفت راز پوشیدن چون دختران تو هنگفتن فصیح او را بدیدن به او گفتن تو میدانی؟ مالی بسیار به این مدل سرف کردیم اگر تو را زر نباشد نخواهیم گذاشت که در این جا بنشینی و بر جمال صبیح و منیمان نزاری کنیم مگر نشینی محبت بیزر دردسر است و به عاشق بی مال اقبال نکند اما گفت به خدا سوگند جز درم‌هایی که از شما گرفتم چیزی ندارم آنگاه دلاله گفت ای خواهران هر وقت نوبت به دور رسید من به جای او قرامت کشم پس ایشان دخن دلاله بپذیرفتند و همما به ندیمی برگزیده به بادگساری بنشستند آنگاه دلاله قرابه پیش آورده پیاله بگرفت ساغری خود بنشوید و دو پیمانه به دربان و خداوند خان و ای به هممال بداد هممال ساغر بگرفت و این شعر بخاند شراب لعل گس و روی مهجب بی خلاف مذهب آنان جمال اینام بید. و این به نیز بخواند اگر نباد غم دل زیاد ما ببرد. نهی به حادث بنیاد ماز جا ببرد. پس از خاندن دست دخترکان ببوسید و قده بنوشید. قدهی دیگر پر کرده در برابر خداوند خانه ایستاد و گفت ای خاتون. من تو را مملوک و قادمم منی ساده مکنون به خدمتت مشغول مرا از این چه که قبول یا نقبول خداوند خانه گفت بنوش تو را گوارا باد همار هم دست او را بوسه داد و گفت نعیم روزگ جنت به ذوق آن نرسد که یا نوش کند باز او تو بوی نوش الغرز به می کشیدن و غزل خاندن و رقص کردن همی گذراندن تا اینکه که مز در دلاله برخواسته جامه برکند و خود را به حوضی که به میان قصر اندر بود درف کند و در آب شنا همی کرد تا اینکه شسته بیرون آمد و در کنار هم مال بنشست و بعد دربان خود را شسته آمده پهلوی هم مال و در آخر صاحب خانه خود را شسته و پهلوی او نشست و پشوخی و له مشغول شدند چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست چون شب دهم ده برآمد شهرزاد گفت ای ملک جوان برخ حمال دخترکان را در پهلوی خود نشسته دید و ایشان شوخی و لهو مشغول شدند ایشان بخندیدند و به مزاح او را حمی زدند و چنگال گرفتند تا هنگام شام شد دخترکان گفتند اکنون وقت آن است که از خانه بیرون روی و زحمت بر ما کم کنی حمال گفت بیرون شدن جان از تن آسان تر است که خود از اینجا بدر شوم. یک امشب نیز بگذارید در اینجا بمانم. چون بامداد شد از پی کار خیش خواهم گره. دلاله گفت: سهر باشد که یک امشب این را دارید. دختر دیگر گفتند به شرط آنکه که هرچه ببیند از سبب آن باز نپرسد و نپرسیده سخن نگوگرد. حمال شرط به پذیرفت پس گفتند که برخیز و آنچه بر برطاقه در نوشتند برخان هممال خواسته دید که نوشتن از هرچه بینی سوال مکن و تا نپرسند سخن مگو هممال با ایشان پیمان بسته بنشستند آنگاه دلاله برخواست شم برفروخت و اود بسوخت و خان گسترده خوردنی بیاورد آنگاه در در قصد کوفته شد دلاله برخواست بدر آمد ستنگدا یک چشم زنخ تراشیده بر دریافت. بازگشته با خواهران گفت که کوبندگان دو ستنند که چشم چپ هر کدام نابینا و زنخشان تراشیده و هر یکی به صورتی هستند اگر به خانه اندرایند حالتی دارند که مزهک توانند بود پسان دو دختر جواز دارند به شرط هرچه که هر بینند سوال نکنند و ناپرسیده سخن نگویند. دلاله بیرون آمده با ایشان پیمان برست و ایشان را به خانه در آورد. سلام کردند و به اجازت دختران بنشستند. چون هممال را دیدند با هم گفتند که این هم به صورت ماست. هممال این بشنید. برا شفت و به گفت لب از یاوه بربندید و هیچ مگوید. مگر آنچه بر طاق در نوشته بود نخان دختران از این سخن بخندیدند و گفتند که هممال با این ستنگدا از باب خنده و طلب امشب خواهد بود پس خوردنی بخوردند و به صحبت بنشستند و بعد از زمانی شراب حاضر آورده همی خوردند تا مرس شدند هممال به گدایان گفت ما را دمی مشغول کنید گدایان را شور در گرفت و آولت طلب به طلبیدند دلاله دفع موسلی و او در عراقی و چنگ عجمی پیش آورد هر سگده بر پا خواستند هر یکی یک گونه آلت بکف گرفته به و دختران نغمه پرداختند و آوازهای مستانه و آواز چنگ و چقانه از خانه بلند میشد که ناگه دیگر بار در افتند دلاله پشت در آمده در بکشود دید که ستن بازرگانند و ایشان خلیفه حارون و رشید و جعفر برمکی و مسرور خادم بودن که به صورت بازرگانان همی گذشتند چون به در خانه رسیدند و آواز چنگ و چقانه بشنیدن خلیفه گفت خواهم که سبب این حالت بدانم آنگاه مسور را کوفتن در فرمود چون در گشوده شد جعفر گفت ما ستن از بازرگانان تبرستانیم در پیش رفیقی مهمان بودیم اکنون که از مهمانی بازگشتیم راه به منزل ندانیم و رفتن به سویی نتوانیم یک امشب به ما جا دهید و منتی بر جان ما نهید چون دلاله ایشان را به صورت بازرگانان دید بازگشته خواهران را از ماجرا آگاه کرد و اجازت گرفته بازرگانان را به خانه اندر چون بیامدن دختران برخاسته ایشان را در جایی نیکو بنشاندن و گفتن به شرط اینکه هر چه بینی سؤال مکنید و نه پرسیده سخن مگویید چون ایشان بنشستن در لاله برخاسته دور شراب از سر گرفت پیمانه پیش خلیفه آورد خلیفه گفت ما حاجی هستیم آنگاه در بان ظرفی از لیمو به شکر گداخته آمیخته پارهای یخ بران ریخته پیش خلیفه بود. خلیفه با خود گفت فردا پاداش نیکو به این دختر خواهم داد چون یاران به بادگساری بنشستند و دور از هفت بگذشت با بادگساران از شراب ناب مست شدند دخترکان از خانه به در آمد و در کنار حوز بیستادند و هممال را پیش خود بخواندند. هممال به نزد ایشان رفت دید که دو سگ در زنجیرند پس خداوند خانه برخواسته تازیانه بگرفت به همه گفت به یکی از این دو سگ را پیش من آورد همه زنجید یکی از آن دو برگرفته پیش برد و دختر بر آن سگ میزد و سگ همی خروشید و همی گریز تا آنکه باز با زبان دختر برنجید و دختر تازیانه بینداخت آنگاه سگ را در آغوش گرشیده اشک از چشمانش پاک کرد و به رخسار و جبینش بوسه داد پس از آن به هممال گفت این را به جای خود بازگردان و سگ دیگر بیاور و هممال چنان کرد. دختر بار دیگر تازیانه بگیرفت و با این سگ نیز چنان کرد که با آن یکی کرده بود. خلیفه از دیدن اینها در عجب شد و به جعفر اشارت کرد که چه بونگی باز پوز. جعفر به اشاره گفت سخن نگود. پس از آن خداوند خانه بیا آمد و به فراز تختی بنشست و دربان بر تخت جداگانه بنشست و دلاله بر پستو رفته همیانی حریر که بندهای ابریشمین سبز داشت به در آورد و در پیش خداوند خانه ایستاده همیان بکشود و اودی از همیان به در آورده تارهای آن استوار کرد و آن را بنواخت و این ابیات برخاند. اگر ز کوگ تو بویی به من رساند باد به مجد جان جهان را به باد خواهم دار. اگر اگرچه گرد برانگیختی خیزه هستی من و باری از من خاکی به دامنت من رساد تو تا به روی من ای نور در بستی، دیگر جهان در شادی به من نگوشاد خیال روی تو هم دیده میکند پر هوای یه زلف توام عوم می دهد بر بام نه در برابر چشمی نه غایب از نظری نه یاد میکنی از من نه میروی از یاد و این ابیات نیز برخاند هزار جهد بکردم که سر عشق بفوشم نبود بر سر آتش شوم که نجوشم به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه عقل نه من و نه هوشم من رمیده دلم به که در سما نیایم که گر به پای درایم به در برند به دوشم چون دختری نبیاد بشنید جامعه بر تن دریده بیهوش افتاد و جامع از تن او به یک سو رفته تنش نمودار شد اثر ضربت تازیانه در تن او پدید گشت خلیفه چون جای تازیانه در تن او بدید چه یه خیره خیره بر او همین در پان برخواسته گلاب بر او به و او را به هوش آورده جامه بر او ببوشانی. خلیفه به جعفر گفت من تاب ندارم که لب از پرسش به بندم و تا کار این دختر و سبب جای تازیانه در تن او ندارم و از حقیقت این دوسری ای آگاه نشوم آرا نخواهم دیره که گفت خدا خلیفه را معاید بدارد با ما پیمان بستند که از آن چه بینیم باز نپرسیم پس از آن دلاله برخواست اود به نواخت و این بر برخاند دوش در حلقه ما قصه ی تو بود پا شب سخن از سلسله ی موگ تو بود که از ناوک مژگان تو در خون میگشت باز مشتاق و خانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر اشق خبر هیچ نداشت. فتن انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم. دام را هم شکن طرقه هندوی تو بود. چون در بانبیات بشنید مانند دختر نخستین جامعه بدرید و از خود برم. چون دلاله برخواسته گلابش بش و هلش بپوشانید پس از آن دختر نخستین با دلاله گفت بخان که یک آواز بیش نمانده دلاله تارهای اود راست کرده این ابیات برخان خان حال آن عاشق که معشوقش به باشد شد نه چون من مانده تنها از رخ آن خوش پسر باشد الا یا باد مشکیم بو بدان معشوق مشکیم مو بگو از من تو را گر بر سر کویش نظر باشد. ندانم در فراغت چند باشم جفت نومیدی شب نومیدی آشق همانا بی سهر باشد. چون دخترین عبیات بشنید فریاد بزد و جامه دریده بی خود افتاد و در تن او اثر ضربت تازیانه پرید شد. گدایان گفتند که کاش ما به خرابند در خفته به جا نمی گفت مگر شما از اهل این خانه نیستیم گفتند گمان من هم نداشتیم که بدیم مکان بیاییم او یا خانه از این مرد است و اشاره به همال هم کردند. کردن اما گفت به خدا سوگند من نیست این خانه را جز امشب ندیده بودم آنگاه گفتند ما هفتن مردیم و ایشان سه تنزن نیستند ما از حالت ایشان باز پرسیم اگر به ارزا پاسخ ندهند به قهر جواب از ایشان بگیریم و همه گی بر این شدند مگر جعفر که او گفت این رعی ناسواب است ایشان را به حال خود بگذارید که ما در نزد ایشان مهمانیم و با ما پیمان بستند که سخن نگوییم اکنون از شب ساعتی بیش نمانده هر کسی از ما به مقام خیش باز خواهد گشت چون فردا شود قصه باز پرسید. خلیفه سخن جعفر نپذیرفته گفت بیش از این مجال صبر ندارم اکنون باید پرسید. و هیچ کدام یارای پرسیدن نداشتند. قرعه به نام حمال زدند. حمال برخواست با خداوند رفت ای خاتون چرا به خدا توگم می دهم که ما را از حالت این خبر ده. که عقوبت ایشان را سبب چیست و پس از عقوبت چرا ایشان را بوسیده گریان همیشه و بازگو که اثر این ضربت تازیانه تن خواهرت چه سبب دارد و ما را از تو سؤال همین است و سلام دختر گفت ای جماعت سخنی که این مرد گفت صحیح است یا نه؟ همگی گی آری صحیح است. مگر جعفر وزیر که او سخن نگفت چون دختر این بشنید گفت ای مهمانان بدعه ما را رنجان دید و ندانیستید که هر کس سخن نسنجیده گوید به رنجند رفتد. پس دختر بانگی زد. در حال هفتن غلام با تیغ برکشیده به در آمدن. دختر گفت که این مهمانان پرگو را دست ببنید. غلامان دست ایشان را بسته گفتند ای خاتون ده که اینها را بکشید. دکتر گفت بگذارید تا حدیث ایشان باز پرسن آنگاه بکشتن جواب دهند. هم اما گفت ای خاتون مرا به گناه دیگران مکشید این جمع گناهکارانند که سرزده بدیم مکان آمدن ما شبی داشتیم خوش و عیشی داشتیم تمام عیش بر ما حرام کردند پس همار این بیت برخواد امروز یار با ما در بند انتقام هم. جرم نکرده ای کاش دانستمی کدام است؟ چون هممار این بیت برخاند دختر بخندید. چون قصه به دینجا رسید با اون داو و شهرزاد لب از داستان فروب بست